بسم الله الرحمن الرحيم اسم التفضيل تعريفه وشروطه الأمثلة الأسد أشجع من النمر الفيل أضخم من الجمل الحديد أنفع من الذهب الشقيق أشد حمرة من الورد الغرب أكثر تقدما من الشرق دو گروه از امثله رو آورده چرا به خاطر اینکه می‌بینیم در امثله گروه دوم مستقیما از خمرتن و تقدمان اسم تفضیل درست نکرده مستقیما بلکه قبلش کلمه اشد یا اکثر رو آورده اگر یادتون بیاد در اول همین کتاب در قسمت تعجب اینا رو خوندیم ما اه ما عدل القاب یا یاتوننیات و می بینمش اصلا میارمش تو نیاز هست. میدونید چرا نیاز هست؟ چون در درس بعدی کامل میاره خب ما عدل قاب اینجا موسیقی ممده بود از عدم چی درست کرده بود ؟ اسم تفیر درست کرده بود. اما در مثال بعدی مسسول بعدی ما شدا ازدحام الملها مستقیما با اتهام درست نکرده بلکه بارد. قبل از مصدر اشدایی آورده چرا جلوتر می آورد که چرا در به اسم تفضیل این کار رو کرده چون اسم تفضیل دقیقا همون شرایطی رو که اسم چی فعل تعجب فعل تعجب داشت همون شرایط هشتگانه رو نیاز داره برای این که شما بتونید از یک فعلی اسم تفضیل درست کنید همون شرایط فعلی عجب رو باید داشته باشه هشت تا شرط بودن فیلن میریم دلوتر خمرتن چون دلالت بر رنگ میکنه و و مؤنسش همراه هست نمیشه مستقیم ازش چه درست کرد اسم تفضیل رو درست کرد تقدمان چرا نمیشه درست کرد به که تقدم سلاسی مزید هست سلاسی چه هست؟ ما قبلا خوندیم که فعل تعجب رو باید از سلاسی مجرد درست کرد شرطش این بود اگر هم که از مزیدش بخوای درست کنی اون موقع کلمه ایماننده اشد و اقبهو یا اکثر رو قبل از مسترش میاری درست میشه اینا اینجا هم همین چیز تکرار شده الغربو اکثرو تقدومن من الشرق خب ولی الهاز اعرابی ترقی با هم دارند مصدری که بعد از فعل تعجب می اومد نقشش مفعول بهی بود اما مصدری که بعد از اشد و اکثر و می آید تمیز هست جه تمیز هست خب کدش میاره در قوائل ببینید چی نیگه؟ فالاشقیقو اشد و من الورد الغرب أكسو تقدما من الشرق القواعد اسم التفضيل اسم مسوغ على وزن أفعال اسم تفضيل اسم هسك دروس بر وزن تي بر وزن أفعال للدلالة على أن الشيئين على أن الشيئين اشترك في صفتك این اسم تفضیل دلالت بر این میکنه که هر دو تا هر دوتا چیز در اون صفت با هم مشترکن مثلا موقعی که من میگم محمد زیباتر هست از احمد معنیش این است که هم محمد زیباست هم احمد هر دو تاشون در زیبایی با هم چی هستن مشترکن للدللاتی ان شعیننی اشترا في صففت دلالت بر این میکنه که هر دو تا در صففت با هم چ هستند. مشتکن ووضعاد أحدما على الآخر فيها ولی یکی از آن دو تا بر اون دیگه چست؟؟ بله بیشتر اون صفتو داره. موقع میگن محمد احذ احسن من احمد هر دو تا زیبا هستند ولی محمد چسب؟ زيباتر هست یکیشون زیباش تر بیشتر هست 137 یصار اسم التفضیل من الافعال التي يجوز التعجب منها درس میشه اسم تفضیل از همون افعالی که جائز بود فعل تعجب از آنها درس کنیم وهي الافعال و چه افعالی بود و آنها بودن الجامعة الجامعه که جمع الشروط الثمانيه که جمع کرده بودن در خود شرطهای هشت دانه را قلتی تقدم هناك اون شرطای که اونجا رساله اونا چی بودن برای یاداوی دوباره میگم یک فعل گفتیم سلفی سلات میبود می بود دو تام می بود یعنی ناقص نمی بود مثل افعال ناقصه مثبتن مثبت می بود منفی نمی بود مبنی للمعلوم فعل معلوم می بود مجهول نمی بود متصرف می بود منظور ماضی و مزاره و عمر می داشت جامد نمی بود مثل اللیه که امر و مزاره نداره و وصفش بر وزن افعال نمی بود وصفش بر وزن افعال نمی بود و قابل تفاوت می بود که امثله رو آورده بود مثلا در ما اشد ازدحام الملها که برای تعجیبش آورده بود ازدحام رو چرا قبلش اشد آورده بود به خاطر اینکه که نبود ما اصعب کون الدوائی مرنن چرا قبل از کون رو آورده مستقیما از خود کون درستش نکرده به خاطر اینکه که کون فعل چه هست فعل ناقص هست ما شد حضرته حضرت، به خاطر همین که چی بود؟ وصفش بر وزن افعال هست و دو شرط دیگه مثبت بودن و مجهول بودن اگر فعل مجهول باشه باز هم نمیشه ازش اسم تفصیل یا صفت فعل تعجب درست کرد. در فعل تعجب مثال آورده بود ما اقبحه اینو قبل آورده چرا ما اقبحه رو قبل اینو آقبه آورده چون اینو آقبه چه هست مجهوله البته اینجا دیگه بعد از اقبه مصدر میاد ولی مصدر معول مصدر چی؟ معول پس زمانی که نتوانیم از فیلی زمانی که نتوانیم از فیلی فیلی تعجب دروس کنیم یا اسم تفزیل تو هر دو دقیقا یکی هست در اون صورت بعد از ما اشده و ما اکتره و امصالشان مصدر میاد ولی اگر ولی اگر فعل ما مجهول بود باید رفت ما معول باشد ماننده ما اقبه انیو آقاب اینجا مصدر چی هست؟ معول هست سریح نیست مثل ازدحام ما عبره اللا یصدق که اللا یصدق چون منفی هست؟ پس مستقیم از خودش سیغه تعجب و درست نکردن بلکه چی رو درست کردن؟ با ما ما اکثره که قبلش اومده است. لذا نه از مجهول باید معلوم باشه خب بیایید اینجا یوتا یتوصلو پس شرطهای هشت رو مرور کردیم یا تفضیل مماللا یاصفی یا توفی اگر یادتون بیاد در درس تعجب خوب از فعلایی که نمیتونستید مستقیما فعل تعجب درست ک و راه دیگه درست می اول شما ش دو رو می بعدش صد میاریم اینجا هم راه داره. اینجا هم راه شوالا در قایده 138 میگه یتوصل الى تفضیل من مالن یستوفی اشروطا به ذکر مصدرهی منصوبا الى بعد اشد او شبه ها مثل همون میگه به اسم تفضیل رسیده میشود اگر شرایط رو نداشت با ذکر کردن مصدرش مصدر منصوبش منصوب بودنش هم به خاطر تمییز هست بعد از چی؟ بعد از کلمه اشد یا شده. چطوری؟ مانند امثله گروه دوم الشقیقو اشد حمرتا من الورد حمرتان حمرتان ما نمیتونیم از حمرتان مستقیما اسم تفصیل درست کنیم بگیم احمرو نمیتونیم مستقیما چرا؟ به خاطر اینکه وصفش بر وزن جاست خب، اومده چی کار کرده کلره اشده رو قبل آورده بعد مقدر رو ولی مقدر منصوبه به خاطر اینکه تمیز هست به خاطر اینکه اما مقدری که بعد از چی می اومد مال تعجب اون نقشش مفعول بود چرا؟ به خاطر اینکه اون فیل بود اون اشده فیل بود چی بود فیل بود ایستاسم <تصفيق> باله الغرب اکثر تقدمان اکثر اسم اکثر چی است ولی و تعجب فعل تعجب بود فیل یا ماضی بود فیل ماضی بود به دو حالت میومد. به شکل امر می و به شکل خدای ماضی می ما اسئله ما این این ساده است الشفیق و میشه مبتدا اشدو میشه خبر خمرتن تمیز، من الوارده خوب جارو نجموع اسم تفصیل نمیگیم اسم تفصیل که هست ولی نقشش چی؟ من هزار بار شما رو گفتم مثلا ما بعضی از طلاب ابتدایی رو داریم هو قائمون میگه هو زمیر قائمون بابا درست زمیره ولی نقش داری این اسم تفسیر که هست ولی نقشش چی هست خبره خبره نقش داره الغرب أكثر تقدما و من الشرق همچنین پس به همین سادگی بریم حالات اسم تخزیم رو در قسمت بابقویم